فرستادن پادشاه به سمرقند به آوردن زرگر، شه فرستادن طرف یک دو رسول، حازغان و کافیان بس ادول، تا سمرقند آمدندان دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر، کیلتی فستاد کامل معرفت فاش اندر شهرها از تو صفت نک فلانشه از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری اینکاین خلعت بگیر و زر و سیم چون بیایی خاص باشی یو ندی مرد مال و خلعت بسیار دید قره شد از شهر و فرزندان برید اندر آمد شادمان در راه مرد بی خبر کان شاه دست جانش کرد اسب تازی بر نشست و شاد تاخت خون بهای خیش را خلقت شناخت ای شده ان در سفر با صدر زا خود به پای خیش تا سوال قضا در خیالش ملک و عز و مهتری گفت ازرائی رو آری بری چون رسید از راخ آن مرد قریب اندر آوردش به پیش شه طبیب سوی شاهنشاه بردندش به ناز تا بسوزد زد بر سر شمع اتراز. شاه دیدو را بسی تعظیم کرد. مخزن زر را بدو دو تسلیم کرد. پس حکیمش گفت که سلطان مه آن کنیزک را به دین بده. تا کنیزک در رسالش خوش شود آب وصلش دفع آن آتش شود شه به دو بخشید آن محروی را جفت کردن هر دو صحبت جوی را مدت شش ماه میراندن کام تا به صحت آمدان دختر تمام بعد از آن از بهر او شربت بساخت تا بخورد و پیش دختر میگداخت چون ز رنجوری جمال او نماند جان دختر در وبال او نماند چونکه زشت و ناخوش و رخزرد شد اندکندک در دل او سرد شد عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود آقبت ننگی بود کاش کان هم ننگ بودی یکسری تا نرفتی بر ویان بد داوری خون دوید از چشم هم چون جوی او دشمن جان وی آمد روی او دشمن تاووس آمد پر او ای بسی شهرا بکشته فر او گفت من آن آهو ام ک از ناف من ریختین سیاد خون صاف من ای من آن روباه صحرا ک کمین سر بریدندش برای پوستین ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخان آنکه کشتستم پی مادون من می‌نداند که نخسبت خون من بر من است امروز و فردا بر وی است خون چون من کس چنین زایع کی است گرچه دیوار افکند سایه دراز بازگردد سوی او ان سایه باز این جهان کو هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا این بگفت و رفت در دم زیر خاک آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک زان که عشق مردگان پاینده نیست زان که مرده سوی ما آینده نیست عشق زنده در روان و در بسر هر دمی باشد ز قنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است که شراب جان فضایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست.